بردم تا نوسته پنجاب دو خوندیم درست؟ خاپ ایک خونه ای که جوانن عربی جاله رفت قولن شدیدیش تو حاضر کردیم؟ نه؟, نه؟, نه ما نوسته رو بودیم نه پس از جان حالیزم یک چند بیتی من از حالا اگه دلت به خواهد دوره هم نیست اشکال نده میتونی می می می می بخونی میخواد بخون. بخون. از اونجا که جلید من دلش نخواد. از اونست چلیشیش تهمتن به دو گفت که شهریار هست را به این کار قمگین مداز سهان بشم از من توی شهر نخواد از آن پس جهان بیر فرمان تو تو گفتی که بر جنگ افراسیاب مرانتی زشگر بدن سویاب بمانی تا او بیاید به جنگ که خود شتاب آورد بیدرنگ ببودیم تا جنگ جویت درست در آشتی او گشاد در آشتی او او گوشاد. او گوشاد از او خود کسنیک آشتی جویت و زدور و برد ننی کوب و پیش رفتن برد و دیگر که خیمان شکن پیشگاه نباشد پسندیده این نیک ها و پیروز روزی به جنگ درستی به دلاور پلنگ چه جستی جز از تاج و تخت و نگین تناسانی و گنج ایران زمین همه یافتیم جنگ خیلی مجوز به روشن از باب خیلی مشروب. که افتاقی آوی سخانها که گفت به پیمان شکستن بخواهد نخواهد پیمان شکستن بخواهد بخواهد نخو. هم از جنگ جستن نگشتیم دیر به جای از شمشیر و چنگال شیر به فرزند پیمان شکستن نخواهد دروگی چکی در خورد تا چرا بخش باید دخون یا هشت خیمن مگرد از زبان و این کار اندیشه کرده کندیشه. وز این کار کرده از شا برای شو نام و پیش آ مطلبش که بهمید یکی اولا افراسی خودش سر شما گفته بودیم که اون آب نرید تو خاک نری ما رو نرفتیم. او هم در آشتی رو باز کرد اول خودی صورد طلبی وقتی که او صوردی طلبه ما هم سر جای خودمون هستیم خاک ایران هم در اشغال نیست چه جنب کنیم؟ کسی که دنبال آشتی و صور و بدنه درست نیست که آدم باز بر رضم بخواست پیشش برید دیگر اینکه ما پیمان بستیم و این پیمان نمیشه و این که گفتیم که شما خوابیدین و تنبلی کردیم نه اینجور نیست ما از جنگ هیچ سیل نشدیم حاضریم برای جنگ اما آقا لزومی نداره وقتی جنگ لازم نیست که آدم نباید بکنه این کار رو و از این گذشته من سریعا میگه بهتون بگم که سیاوش پیمان بسته و هرگز پیمان چی نمیشته تهمتن در دو, دو گفت ای شهری ها دلت ها این کار غمدین مدار مراهد نباش. سخون بشنو از من تو ایشه نخست چون جوش اومده بود و خیلی و حالش شده بود سخون بشنو از من تو ایشه نخست از آن پس جهان زیره فرمان تو اول حرف منو بوش کن بعد هر دستوری خاصی بده تو گفتی که بر جنگ افراسی آب مران تیز لشگر بدان سوی آب من نگفتی که اگه رفت افراسی اون طرف آب مراد از آب سیحون و جیحونه شما دومبالش نکنید خود گفتید بمانید تا او بیاید به جنگ این ورسط کنید آره کابوس گفته بود گفته بود که شما جنگ نخواهید از افراسیاب افراسیاب خودش خواهد اومد به جنگی حالا خب نایمه دلیل نایمه ده ما به عنوان خاننده میدونیم چیه خواب دیده بود خواب بدی دیده بود و نایمه. ولی کابوس نمیدونه رستم هم نمیدونه اما میگه که خب ما هم بنتظر که او به جنگ گد اما نهنگ نه. او اول در آشتی روزه. تو اگه کسی پیشنهاد آشتی میکنه ما بگیم نه تو باید حتما بیا جنگ کنیم درست نیست. تو گفتی که بر جنگ افراسی آب منان تیزدش کرده سوی آب بمانید تا او بیاید به جنگ که او خود شتا آورد بیدرنگ روشنی بگه ببودیم ببودن یعنی کردند. ببودیم یعنی سب کردیم تا جنگ روید درست اما به جای جنگ جستن در آشتی او گشاد از نخوست اول او پیشنهاد آشتی کرد کسی که آشتی روید و سور و بز ننی که باقی بر برست درست نیست او دیگر که پیمان شکن پیشگاه نباید. نباشد پسندی دیل نیست دیگر این که پیمان شکنی درست نیست و اینجا پیمان بستیم سیاوش تو پیروز بودی و جنگ برفتیم به سان دلاور پلنگ میگه سیاوش پیروز بود در این جنگ رفتم جلو ولی چی میخواست آسایش ایرانی رو میخواست تخت و تاج و نگین میخواست کلاه میخواست اینا همه حاصل شد چه جستی جز از تاج و تخت و نگین نگین انگوشتری روش اسم پادشاه کنده بوده و مهر بوده میزادن پای فرمان فرمان اجرام شده یعنی که نگین به معنی به معنی وسیله فرمان روایی و پادشاهیست چه جستی جز از تاج و تخت و نگین تناسانی و تناسانی یعنی آسایش تناسانی و گنج ایران زمین میگه اینا رو کی نرو می‌خاستی چیزی که نمیخواست همه یافتی جنگ خیره مجوی یعنی بی... بیهوده و بی‌فایده همه یافتی جنگ خیره مجوی دل روشنات یعنی با به تیره مشوی با یعنی به آب دل روشنت رو با آب یعنی خشم نگی که حتی خواستی پیدا کردی دیگه چرا باید پایی می‌کنی چرا چیز میکنی. که افراسیاب این سخون ها که گفت به پیمان شکستن به خواهد نهفت برای اینکه اگر ما پیمان رو پشکنیم افراسیاب هم هر که زدی که قبول نخواهد داشت دیگه است او وقتی هر که زده سرش با میشه که ما هم چیز نکنیم افرامی نکنیم بلا او هر که زد وقتی شما پیمان رو بشکنید و بیزنه زیر حرفاش ما از زنجان جستن نگشتیم سیر ما از زنجان سیر نشدیم چون کابوس حالا میگه میگه تو پیر شدی تنبل شدی گشتی خاویدی نرفتی میگه نه ما از زنجان نگ نگست... نگشتیم سیر به جای از شمشیر و چنگال شیر این چه نوکته بگم براتون او است که در تمام حماسه های دنیا قهرمانان حماسه هیچ وقت در نتیجه گذشت زمان نیروشون کم نمیشه قاعده است تمام آثار هماسی قهرمانان در نتیجه هفتت سال هشتت سال بیگن ولی زورشون سر جای خودشه یعنی گذشت زمان درشون تأثیری نداره این است که رستم هم همینه میگه میگه ما با سهراب که جنگ کنه سهراب بشه که پیر شدیم یه نه یا اسفندیار همینطور میگه با این سن با این پیری باز داره جوانی میکنیم نیروشون کم نمیشه باید اینه که میگه که هم از جنگ جستن نگشتیم سیر به جای از شمشیر و چنگال شیر اما به فرزن پیمان شکستن مفا دروخ ایچ در درخورد با کلا درخوردن یعنی سزاوار بودن و مناسب بودن الان هم داریم میگیم درخور این کاره آقا در این کار یعنی مناسب برای این کار از در خوردن میاد دیگه در خوردن معنی مناسب بودن میگه دروغ با کلاه کلاه مراد چیه پادشاهی دروغ با کلاه موافق نیست یعنی پادشاه زشته ازش که دروغ بگه دروغ هیچ هیچ کی در با کلاه چه چه اصطلاحات فارسی چیزی هستند کلاه به یکی کلک میزهدن آره. آره. آره. آره. آره. نه نه نه نه نه نه نه این اصطلاح قدیمیست که کلا اون وقتی مردم گفتم اول یه بار مردم کلا نمیزشتن این شدون سرشون یکی چیزی بستن درستشون هنوز در هم در زابل همون بلایت روستن کسانی که هستن ایت که پارچه سرشون بستن این هم رخت خوابشونه هم صفره نونشونه هم وسیله قریدشونه همه کشون هم امینه که و مرد ها که به کلی میاد میاد بدبخ از سیستان میاد مثلا به گرگان اونجا عملگی بسانه یک پولیم خیلی عادی معمولی هست اینا کلاه سرشون کسی که کلاه سر آشت شاه بود و رجال دوله اینا خیلی جه ها تو داستان رستم و سهراب میگه وقتی رستم اومد نزدیک شهر سمنگان رسید پذیره شدن داشت یعنی استقبال کردن بزرگان و شاه کسی کو به سر برنهادی کلاه کسانی که کله سرشون بودستان برای توجه خاطرتون بگم که تمام مردم ایران تقریبا به همین تعصب بودن یک چیزی دور سرشون می‌بستن یه قواهی دراستن عین لباس آخونده رو داشتن منطقه تفاوتشون با آخونده این بود که اماماشون هر جور مخصوصی بود مثلا تاجرها میگفتن امامه شیرشیکری میذاشتن سرشون یه پارچهی بود که سفید بود گلای زرد کم رنگ داشت یه خود رنگ داشت که معلوم بود این مال اهل علمی با شخص مردم عادی همینطور مثلا یه بود نونبا بود نونبایی داشت رئیس سنف نونبا بود اصلا تورک بود تبریزی صحواد نداشت یا اگه داشت دو کلاه شما صحواد سرش بود و عبا و قبا بود این لباس همه مردم رزاشاه آمد یه قانون اتحاد شکل بود یعنی که مردم همه یه جور لباس بود کلاهی روز کرد کلاه خدمت ارتشی های فرانسی یعنی ها کلاهی آپدار پلیس اونها دید کلاه اونا رو گزارشم با فرانسه روابط خوب بود گفت مردم میشد سرشون اسمش کلاه پهلوی من تا 6 شش ابتدایی از سال 1312 13, درسم 13 قط یه موشم حس عکسن شاید نه سالم بیشتر نبود زردنبوه و کوتولو و ضعیفم بودن تازه به نسبت سنن یه کلا پهلوی سرم عکس گرفتم جوابت عکس اون رو هست. مجبور کردم مردومه که اون کلا رو و اما ما و قبا او را به نزیجه فقط آخونده موندن ما این لباس اونم دوره رضاشه ها آخونده که خیلی درجه بالا داشتن و الا اشخاص کم و اینا را اونا هم نمیذاشتن که امام سرشون بذارن و لباس و کلا نه از اون وقت باق شد و در ذهن به شما دیگم که در اسلام به طور کلی و گویا در یهود هم هم این سر باید پوشیده باشه. این است که آخونده وقتی اما ما یه شبکلا سرشون همیشه سرشون باید پوشیده و خیلی زشت میدونه که کسی سرش برهنه بشه یعنی آدم سر برهنه آدم از بیهیسیت بدبختی بوده الانه میگن بی سروپاییگه بی سروپای یعنی کسی که چیزی سرش نیست پاشم هم چیزی نیست خابه رو نست بی سروپا چه آدم بی سروپای یعنی لات و بدبخت این سروپا لباسه اصلا و پاتشا اصلا میخواد خلعت بده لباس بده کسی میگفتن که سروپا داد بهش یعنی از فرق سرش دانه که پاش لباس این از که کلا باید یعنی سرشون باید توشیده منطقه این کلا داشتن دستار رو داشتن و بزرگترین بی احترامی این بود که کلا یکی رو از سرش آقای یه به نام مجدل اسلام کرمانی مردی بوده دوره مشروطه و اینا یه خود مخالفت کرده بوده با این دولت صدر ازم مزفرزدین شای که مستبت بوده اینو میان تبعیدش کنن. سهر که سه هوا تاریج میرزن تو خونش اینو میگیرن همونجا سوار درشگش میکنن و میگن بره مستقیم به کلات نادری کلات نادری یه جای سرپوراسون بسیار بسیار بد آب و هوا نزدیک مرز روسیه و جای خیلی سخت بعدی، بفتنش کلات نادری حالا وقتی ده روزم بیس روزم طول میکشته ساینه ببرن ولی را به را بردن. میگه من خیلی ناراحت بودم دیگه آدم خوابیده صبح بریزن تو خونه زن و بچه‌شو بیدار کنن، یا ناراحت میشن، بچه‌ها ناراحت میشن، همه ناراحت میشن، بعد خود منو گرفتن، معلوم نیست چرا میخوام بکنن، چه فوندن. میگه خیلی ناراحت بودم. ولی تورا که داشتیم میرسیم یه وقت یکی از این لاتا ها و پرید، عموهای من اصلام برداشت. وقتی عموهای من اصلام برداشت، مثل این بود که حیثیت من به باد یعنی میگه هیچی برای من بعد از این کار نبود که کلاه منو اب سرکوش من از درم بردشن. خیلی بد دوره رزاشان که گفتن کلا مدت های مدید آقا آقاها آقایون توی سالونا توی محل پذیرایی، توی جای سختار که اومدن کلا سرشون بعد دستور دادن به سیستم اروپایی ها که وقتی میان در جای سختار در سالونا کلا رو بردارن و این گرفتاری تولید کرده برای مردم برای که بودن که خیلی یعنی همجور فکر میکردن فکر کردن که کراس میکردن اینکه آبریشون بردن حیزیتش یکی دوبام که بابا کچل بود <تصفح> درشتر مردمان بچه ها من یاده ما بچه بودیم خیلی زیاد کچل میشده و سرش کچل بود دیگه ناراحت بود از اینکه زشت بود یک جموع داشتی چون نداشت در صورت زشت ما یه معلم عدبیت داشتیم خدا رحمد کنه آقای راشدی مرد عالمی هم بود و معلم خوبی هم بود کلاس چهار و پنج متوسطه ما درس سیداد با اینکه اون دوره خیلی سخت بود، این سر اینکون خیلی خراب بود میکرده <تصفيق> <تصفيق> استثنائاً این کلاش هم توی سرشتیم نیومد شد سر کلاس، کلاش رو حدید ولی هیچ معلم دیگه سالای 2014-2015 نمینام، نه که کلاه شو برنرشته بیا خیلی از هم آقای راشدی بعد هم روابط با فرانسا بیا به هم پرگفتن کلاه پردوی رو بردامن کسکت بسه مثل کلاه پولیس یه مدتی هم کلاه اون راشدی که گفتن چرا کلاه کسکت برش بود با های تمام لباس خاکستری رنگ بود رنگ دامن دوشیزه و انقدر من لباس خاکستری پوشیدم 10 سال مثلا همجور دوره دوستان و دوره دویرستان یخش هم مثل این لباسای استالین هست یخش اینجوری بود مثل چینیا یونیفورم اونجوری بود لباس کازرونی چیز پاچه بعدیم بود ایرونی بود ولی پشم خیلی زخیم بد برای اینکه حالا هر قرف میاره پشم خاکستری بدترین نوع پشم حالا, حالا میدین چرا چرا چرا بدترین برقه هیچ که تو نمیرسه سلیدش بسید کله داریم که داره فکر کنید <تصفیق> <تصفیق> <تصفیق> آره گوزفند سفید پشما سفید داریم میزنن پشما سفید و میزنن واسه پارچه سفید داریم سیاه پشما سیاه داری. باز میزنن میزنن واسه پارچه بهشوید رهنگه گوزفند قهبهی هم. چه اینا یه مقداری پشت میمونه اون پشتمای بعد آشقالی که میمونه اون تر اینا را همه با هم قاطی میپنن اون چه خاکست داری <تصفيق> <تصفيق> اینه که بدتری نوم پشتمای، عرضتری نوم پشتمای، پشتمای را خاکست داری رنگه که قاطی همه ایناس با هم و اما از این لباس درست میکردن و ما در تریه سال تو ما ادرسه باید اون لباسو میپوشتیم <تصفيق> اگه ای پوتر یک خیلی چیز را اینا میپ و با او گلو شاها رژه می رفتیم بودای سر بوم اسپنج و رزا شاها رژه می رفتیم ما سیکل دو بوم البته از کلاس 10 ده و اینقدر من از این لباس بوشته بودم که بعد دیگه در تمام عمرم حاضر نشتم لباس و خاکی سری رنگ بفت بسکین آقایت <تصفيق> بودم ول برحال این کلا سر مردم گذاشتن و اینکه مردم کلاه داشته باشن و همه کلاه داشته باشن و کلاه سرشون بگذارن اینا این خیلی خیلی چیز جدیدی است و عجبتر اینه که هم کلا سر گذاشتن بنه گور زدن و به اصطلاح چیز کردن هم کلا میگه کلای فلان کسی برداشتن اینجوری کلاه فننکسو برداشت کلا وارداری یعنی یعنی و چیزی دوزیو که زیر گور زدنش گرفته هر دو معنی رو میده کلا گذاشتن و کلا برداشتن این جدیده. یعنی شما در حافظ سعدین ها نمی بینید که بگید که کلا سرم بزرگ یا کلا هم وردست نه تازه بگید این مسئله فردوسی که مال هزار سال پیشه اصلا اصلا صحبت اون وقت فقط اشراف شاه و رجال بزرگ فقط کلا سرشون می و این مرادش از کلا هم اپاد شده خب ز فرزن پیمان شکستن مها دروغ هیچ کیک در خورد با کلاه بعد میگه چرا من در کوچش و در لطفاپه سخن بگم من راست درست صاف بهتون بگم نهانی چرا کو با باید سخن سیابوش ز پیمان نگردد که میگه از بیخ سیابوش پیمانی رو که بسته نمیشکنه از این کار کندی کرده است. شاه دستوری که داده دادتونست از دور که حدایی رو بذاره رو آتیش بسوزون و اونها هم بفرست من سرشون بگورم اینجا بیده این فکری که شاه اندیشه کرده جز آشوب و جز برآشوقتن همه کارها هیچ نتیجه نده بود این کار که اندیشه کرده از شاه برآشوق بعد این نام بر پیشگاه دو کابوس بشنی، ست ورد خرش، برا شخت از آن کار و چشم تمین گفت شاه جهان، بیدون نماند همی نهان که این در سر او تو افکنده ای چون این از دلش کنده ای تناسامی خیش جستی بریم، نه افروزش تاج و نگیم میبینیم، به جهان پهلوان، میگه تو میخواستی بخواست کنیم، این فکر روشت. یش ورید که میدی 600 حسات رو تام زندگی کرد. هیچ وقت اینطور نبود. آدم فقط به عبلاه پشیکی آدمی جیبی که تو مثلا بسته فرم. تو ایدالومن تا سپهتو تو ببنداد بریک هار باقی بر کرد. من اکنون هیونی فرستم به بعد یکی نامی باز تا خنده های تال. سیاهوش اگر سرز پیمان من بپیچد، نیاید به فرمان من به توس سپسپس سپار از خود و ویژگان بازگردد در به ببین از زمن هرچند در فرد، گروه را داوری در سر قمی گرشت رستم با آواز گفت که گردون سر من نیارد نهافت اگر توس جنگی تر از رستم چنان دانی که رستم زمیدی کم به گفت این رو شد از پیش او پر از خشم کین از رنگ و روید همان <تصال> در زمان تور را خاند شاه سفرمود لشکر کشیدن به راه چو بیرون شد از پیش کابوز توست <تصال> سفرمود تا لشکر و بوغ و کور به سازند آرایش ره کنند. بزن رعض را راه سوته کنند. هیون می بیاراد کابوز شاه سفرمود تا باد گردد به راه بسیار هیچ پانش نایمد، بوقاتش شد از افتار روستم خشمم بود و اینجا یکی از نقطه های خیلی حساس داستانی روستم رو کاری میکنه که روستم بر نمیگرده و بر نگشتن روستم صحبت جنگ و زوراوری نیست برای اینکه سیاوش خودش اندازه کافی فر پهلوانی داشته ولی تجربه و تدبیر رو توس هم آدم سباک, سباک مغزی بوده معروفه در میون پهلوانای جاهنامه به سباک مغزی و تندی و یه،, یه تیپی بوده مثل خود کافز رو لشکر اینا هم بوده، شاهزاده بوده پسر سر بوده لقبش هم از توس زربین کفش. خلاصه آدم بوده که هر جا فرستدنش جاهنامه هر جا میگه فرستدنش کارو خراب کرده در جهان تندی و تیزی کاری میکنه که رستم بر نگرده و سیاهوش از تدبیر و مشورت رستم محروم بمونه این باز یک قدم دیگه این, این شاهده از روز اول که به تو آمده بیگناه و معصوم و پاکیزه و درست و راست بوده ولی سرنوشتش قدم به قدم اون تو پول میده به طرف من یه قدم مهم که بعدش میشه اینو که این از مشورته براستن محروم میشه در شد. چو کاووس پیشتی سرورزه خاش براش افتزان کارو بو چارچاش برستم تو نینگ و شاه جهان که ایدون نماند همین در نهان میگه این مطلب پنها نیست که این در سر او تو افگنده ای این فکر رو تو تو چه او گذاشتی چون این بیخ کین نزدلش کنده ای اینجور بیخ کین جویی رو آشتی سر طلب ایناش کردی تناسانی خیش شستی بدین برای راحتی خود دین کار کردی نه افروزش تاج و تخت نگین میگه تو به اصطلاب چهرت و پروزندگی تاج و تخت در نظر نداشت این کاری کردی برای تنبالی خود دین کاری کردی توییدت بمان تاسه فهدار توست ببندت بر این کار بر پیست پوست شما تشب داشته بوشین توست بره دنبال این کار بگیره من اکنون هیونی فرستم به بلق یه پیک سریع یکی نامه ای با سخنهای تلق سیاقش اگر فرز پیمان من به فیچر نیاید به فرمان من به توسه سفه سفارت سفاره سفاره و میژگان باز سفاره یکی اگر به فرمان من نمیخواست باشه و فرستادار نمیشسته و اونورم مادش نمیزنه سپاه ویده از سپاه ورد و برگرده بیاد تا من بدونم باز چکار بکنه به توس سپاه ورد سپاه خود و ویژگان بازگرده از دراف ببیند زمن هرچه اندر پرم اون وقت هرچی شایستشه از من خواهد دید یعنی محافظه میشه و تندیح میشه برای اینکه چرا به گفته شاه عمل لکرده گر اون را این داوری در سر اگر اگر چنین چه رستم نراحت شدی شد که همین شد قمی گشت رستان. با و گفت که گردون سر من نیارد ما هر وقت به... به یعنی هرچی میزندم که به شرف رستم و به حکیت پهلوانیش برمیپرده خیلی سخت جواب بوده توی داستان رستم و اسفندیار میگه که حالا بعد از مقدمات زیادی که من الان نمیتونم بگم دیگه که آمد در مجلس اسفندیار قبلا هم یه خود گهتگیری با هم کرده بودن و عصبانی بودن این ها استاندیار جای رستم رو در طرف چپ خودش در این بود رستم پشم اینجا جایی به پسر اسفندیار به بهمن کب بلند شد از این من بشیم پسر و بیمه این بود که استاندیار اسفندیار، از این سان گله بودن که سان روبروی به رو یکه داشت چون اینو اپانو ایکس یاکن اف صفر نه بود کجا منش پیش پات قامی و آوا گفت که گردون سر من نیارت نه اگر توس جنگی تر از رستم ندام جانان که رستم تو نیست چم اگر توس از رستم جنگی‌تره رستم باید بره سرش بزاره بنجه فرض کن که اصلا تفاوت اگر اگر توس فتونه به بهتر از رستم کار بگفت این رو بیرون سود از بود این پهلوانان پهلوانان سلسده پهلوانی سیستان خودشون در زابل فرمون روایی داشتن شاه بودن اینجا شاه ایران شاهنشاه بود خودشون منبکت داشتن و فرمون روایی داشتن و دامنه کشورشون تا کابل یعنی تمام افغانستان فعلی رو در بر میگردن به همین دلیل هم ها معتقدن که اصلا صحنه واقعی حوادث شاهنامه افغانستان و معتقدشون تا حدی هم درسته منتها بعد اونایی که خیلی متعصبن در افغانی بودن میگن ایرانیا اصلا اینو جعل کردن مثلا این افتخارات مال ماستونها بردن خوردن و این البته درست نیست یه مردمی بودن در این فراسر این مملکت پهناورد زندگی میکردن یک گروه اون طرف دن, گروه اون طرف چیزام نداشتن مرزای سیاسی مثل امروز نداشتن حرف نمیرفتن میخواستن میرفتن حرف نمیخواستن میومد رابطه یکی بودن اصلا بنابراین هرچه مال هر دوس نه اینکه این, این بکمال مال اون کم مال مات اصلا این حد صحیح بارون کنم که اینا قراردادای داشتن و بنابراین ترستان نوکره اینجوری که بخوان بگیرن نمیانترس کنن، نبود و سر داستان اسپاندیار هم گوشت داشت پدر اسپاندیار اینکه او رو به کشتن بده میگه رستن بیاقیش شده و اصلا از اونی که فیلتره ما یعنی لغرات و گوشت و اینا بعد از سری خود اومدن اصلا نه سری زده به اینجور، نه نامهی نوشته، نه پیغام کده، نه آمده تو میری؟ دستشو میبندی و پیاده میدوزی جلو عصب میاریش اینجا تمام گرفتاری هم همین بوده رستم میگه آه شاهزاده هرچی میگه میگه که به خدا قصم من دروحو نیستم من هرچی میگم راسته تو رو که دیدم و اندازه سیاوش که دیدم خوشحال خالش و همچین همچونه دید بعد میگه شاهزاده هر چه میخوای من حاضرم گنچ هایی که تمام اجداد من در اوزان در میارم همه شون در, در, در. اوزان خود من میام اگر شاه همونجا دست رو زنم بکشم بکشم اگر دست رو بندم کنم بندم من هیچ حرفی ندارم هر چه تو بگی میکنم هر چه بیشترم بگی من قبلیش از اون که تو میخوای میکنم جز یک چی مگر بعد که از بند آری شکستی بود زشت و عاد. اسفندیارم هیچ ملاحظه حیثیت رستمو نمیکنه با اینکه برادر خیراتمندش پشوتان چند بار بهش میگه برادر دیو دست به تو راه پیدا کرد. نباید پاداش مردی که این همه خدمت به ایران کرده به این دست. و نکن فور من میترسم از عاقبتش تو اسفندیار برای خود یه بهانه‌ای هم پیدا کرده بود که فرمان شاهه فرمان شاه رو اگه کسی اجرا نکنه گناهکار میشه بعد به نه و من دو گیتی رو فروستم که حاضر نیستن بفروشن اصرار میکنن که نه و من هم چی میخوامم چی میکنم تو دستو ببند بده من تو رو ببرم اونجا نمیذارم کسی دستم یه بزنم به عهده من که نذارم یک ساعتم چی بکنم همچین پول رسوندم همچنین مالیدم همچنین من آها دست یاد و نمیشه بعد چه گفت رو دست درستم به نبن دست مرا دست چرخ کرد بعد میگه اگر چرخ ولک سفاد با من اینجور رفتار بکنه به گرز گرامش بماغم دو بوش به چرخ و عدد کنه چون که بیچ الاخرم سر همین محلت تار به من ترجه دیگه میرم بالاخره دو طرف تا میرسه به اونها اینجا هستند. بنی گاش رستم به آواز گفت که گردون سر من نه آورد نه هوت اگر تو جنگی‌تر از رستم هستی چنان دون که رستم تو کی کم است. به گفت اینو بیرون شد از شیشودی که منتظر اجازه شاه ناهم نم نم راش بشید را. پر افتاشم. اینو پر از رنگ روی یعنی صبح شده بود. تو بیرون شد همان در زمان توس را خاند شاه بفرمود لشگر که چیزن براه همجور که دستور داده بود. چون بیرون شد از پیش کاغوز توس بفرمود تا لشکر و بوق و کوس بسازند و آرائش رفت کنند بزن رزگه راه تو تحقیل هم شاه همجور که گفته بود یه پیک سریع فرستاد که دستورات برست خود شده سیاوش کنید بگی آم کاری که گفتنس میکنی نامش هم حالا میگه و نامه هم خیلی تند یعنی از سر خاش به زیابه شگی گناه از سر خاش. نبینیش بعدم پیکو میترسه هم رو میگه که اونا رو آتیش بزن اونا رو بفرس زیابوش هم که نمیترسم زیابوش که نمیتونه این کارو بکنه میگه برای من که امکان میدونه قنقه نزدی که افراسی ها بود گرسم به عنوان یه که اگر او کاری نکنیم من مگه دارم با رزت رو اطرام کردن پس بدم بهش یه چیزی حالا ندرستم این بکشم میاد میگه که یکی دو تا از فرداراش بحرام و زنگه فاهران میگه که شما این به این قنقه افروسی رو بردمی ببریمون برد حدیه هاشون حدیه میبرنیمون بگین بهش بگین که پادشاه جور دیگه دست و من چون راضی نیستم به اون کارش کرده اینو پس داد اینا گذنگی نبید اینا میان بگن که شا آقا چه ساده قربونه داریم ما نکرسیم نمکنم اگر ناراحتیم من خودم این رو نیبرم خیلی داستان چیزی میگن نه ما فدوری هستیم ما چیز هستیم ما حالی شما میگه منو فکرمو نکنم من بعد خودش میگه که ممکنه من یه راهی بدون از قرآن که من برم یه گوشه دیگرم نباشم که اون ها با پیران مشبرت میکنم خیلی مفقل کارشی نمیم کنم پیران بهش میگه که این شاهزاز و به ایران کاغوس هم پیره که با خواهد مرد تو اگر این عزت تلویزیون ات، آمیتیو گرامی اون بدو میگاش بود این فردام از یک ایران مال اون اون وقت‌ها عادی و بهش نیکی کردی بنابراین تمام این کینه ها و ناراحتی هایی که بین ایران و اون وجود داره دیگه این رفتار تو کلی اسمش میره و دوستی جایگزین این دشمنی میشه. اصلا ما مطالب دیگه نمیگیم که حالا ان شاءالله اگر ما اینا رو یکی از اینا میگه که آما این دشمنه و من شنیدم که دشمنو راه دادن و بهش پیوستگی بزیکن من سخته نباید ولی پیران میگه نه این آدمی که او روز راه داده خیلی خوبه چنینه چنانه نگهش میدنن افراسی ها خیلی میخداشته بهش زخترش میده اما گرسی و از برادر افراسی ها رهش بیوره بیوره, بیوره. برای اینکه از هر به هات از اون قابلتر و تواناتر و بهتر بوده و بیشتر را بوده مهر احساسی و جلد. این که شروع میکنه خواب کردن کار تا که منصبه خوش نویسنده نامه نبیسنده نامه را پیش برای نشان یکی نامه فرموند بر خشم جنگ، زبان تیز و رخ نخست آفرین کرد برکردگار خداوند آرامش و خاردار خداوند کیهان و بحرام و ما خداوند نیکو و فد و فر به فرمان او یست گردان و پیش وزور باز بسترده هر جایی میر را ای جوان تندرستی و بخ همیشه دمان آت با تا جتر. اگر بردلت رای من خیر گشت به جوانی سرسید خیر گشت شنیدی که دشمن به ایران چه کرد. چو بیروز شد دوزه نبرد کنون خیره آزرم دشمن مدون بر این باگه بر من این داغ روز آبرون من افر جوانی سرندر فری گر از گردان نخواهی نهید گروه که داری به درگفت برید به بخرا همه سوی خرگفت برید تو را گر نباشد شگید مرا از خود اندازه باید گرفت که من دان فری گفتار اوی و زیباد گرشتم به بگار اوی نرفتی هیچ کام از تخون به فرمان من زوری برگاشتی تو با خوب روید بیا به شادی و از جنگ با گریفتی منو بیمین مثلا چقدر اون وقتی که میگه برود در حرم و اونجا خوهراتی بیبین و صود آقا رو که در ببین مثل آن خون سیاقش میگه پیجر منو برسو پیش مردم پیشه موبدان که از اینها ترت یاد بگیرن پیش سواران و جنگاوران که از اینا لشگرکشی و فنون نورد اینا بیاموزم من برم پیش سنها چیپار کنم با این حال میگه هره رفتی اونجا با زنها و خوشی و بنابراین دیگه جنگ تشکیل اینقدر نداره که بچه خود رو بشمسه آیا اینکه میگه حقیقتا این یا نیست بگو تو آخو روان بیام میختی به شادی یا جنگ بگردی با. وزن مدری تاج شاهنشهی تو را سر شد از جنگ و توهی در بینیازی به شمشیر جود به کشور با شاه را آوه بود که تو تویست صفح برد بسرد پیش تو بسازد تو باید کنود پیش تو همان در زمان بار کن بخاران گروگان که داری به بند گران از این آشی را به چرخ بلند چنان است کایت به جانت گزم به ایران بسرد این بدی آگهی برا تو بگیل بهید دو شرکین و آویختن را بساز خوزین در در سخنها دراز چه دو ساز جنگ را شدیخون کنی تخواه که شیخ نیوده جیخون کنی تبخبت سرندن نیارد خواب. یا, یا جنگ تجنگ سفراسیان اگر می افتادی بران من که خانم پیمان شکن تبخبتی تبخبتی را تو خود بازگر کرد این مرد فرخاش و جنگ را این نامه مثلی بد از ولی فرمول نامه باز اول سپاس هند خدا بعد دعای ببادشه بعد مطالب دید در ضمن یک نوکتر رو به شما بگم این است که هیچ وقت در نامه های بادشه هیچ وقت هیچ جا لغات خیلی زشت و پوشای تارباداری و این که تو مدکه خریستی و هیچ وقت در هیچ دورهی بین هیچ پادچایی چیز نمی آن. همیشه در کمال احترام به هم کتاب کرد بعد می که حتی مغلا با اون شدت عملی که داشتن و با اون کشت و کشتاری که را می نامه هاشون خیلی نرم بوده می که ما می که شما این کار رو بکنید این طور بدید، اینجوری اطاعت کنید، فلان بکنید اگر کردید که ما روابط همون کوه اگر نکردید ما نمیدونیم چه پیش خواهد آمد خدا آخرم میدونیم نامه نامه ها همیشه لحل یه مش نامه بین شاه اسماعیل و پادشه های تفاوی و پاچان های عثمانی رضا بادرد اینا همهگر اصلا کافر میدونند یعنی سونی ها شیعه ها رو نجت اصلا میدونند معتقده که پشتن شیعه ها از پشتن یهوی و نهترانی اونها اونا هم روز ولی نامه هایی که رضا بدل میشه هیچ این لحب نداره، فریدی لحب نرم یعنی شاهانه این همه همیته اول که میزه و تند و تل خوینا مادم فکر میکنه که میگه پسر این مثلا این قلطی بود که اطلا نیستش ولی مطلب همونه همون تندی نبشتن همون نبشتن به و به به هم بدل میشه کرداز زبان میگن زوان به و به هم وزیدن با وزیدن میگن فزیدن نویسنده نویسند نویسنده نام را پیش خاند برای تختیفیشش به کرسی نشاند کرسی یعنی سنده کلمه سندلی کلمه خیلی جدیدی قدیل نبود و برای صندلی کرسی می گفتن هنوزم در هند و پاکستان اینا صندلی میگن کرسی. و مثلا سندلی یعنی چیزی که از چوب صندل ساخته روشن. و صندل میدونی که توی عوشبویی به خیلی گران. و دیگه حالا چرا اینجوری شده؟ تو دیگه استراحت. و هر حال اونجاها کرسی میگن کرسی به همین معنی و اون کرسی هم که ما میذاریم در ایران که اسم او شده فقط از کرسی هم معنی تخته یعنی چیزی که روش میشینم و کرسی هم مثل میز بزرگ دیگه و کتا که دو اسم اون شده کرسی باقی همه رفت کرسی صندلی لغت سندگی بنابراین آدم خیال میکن که مثلا سندگی خیلی تازه و مثلا با همه جدید آمده ایتاله بشن اینجور نیست در تا هم بارگاه ها سندلی بوده متأسف کورسی میگه نویسنده خود کورسی هم منی یعنی تخته من. این چیزی که دوش بشینم تخت هم کسی نویسنده این نامه را پیش برای تخت خیشش به کورسی نشاند نامه فرمود یعنی دستو بزین ایکی نامه فرمود ارخش موج. زبان تیز و رخصاره چون بادرنگ بادرنگ زرگه این یعنی رخصارهش رومش از خشم زرد کرده بادرنگ همون که حالا بشنید بالنگ مرقبای خیلی خوبی هم داره از مرکباته روزه پرتقال و مارنگی و اینا. چیز ترنجیه به درازه پوست بسیار پلوفت داره مغز بسیار کم و بسیار توش که مغزش اونقدر قردنی نیست که پوستش پوستشو میکنن پلوفت این پلوفت بعد عطر خیلی خوبی هم داره تو آباهک میخوابونن که این سف بشه کنچی بشه به قول شما و بعد مرفاه میپزن مرفاه بالنگ که پاهای منو ببندن و دستای شما رو ها. بادرنگ یکی نام فرمود پرخشم و جنگ زبان تیز و رفتاره شون بادرنگ نقص آفلین که از برز فرمول نامه ها خداوند آرامش و کارزار وی باز این برایت استهلال داره من برایت رو یه وقت گفتم اینجوری می نمیسن برایت اسم یکی از تنعتایش کلام چه شعر چه است اصلا اصلا برایت یعنی توانایی استحلال هم یعنی ماه دیگه هم توانایی ماه دیگن. اما اصل مثلا پیه میدونید که ماه و حلال ماه در مذهب یعنی در دین اسلام خیلی حساس و مهم در دو ماهه سه ماه به خصوص یکی اول رمزان اگر هلال رو دیدن روزش شروع یکی اول شبال که حلال رو که دیدن روز تمام شد یکم اول زلهجه که هلال رو که دیدن ده روز بعد عوضه مهج یعنی از روزه هفته رو هم روزه همه تا دوزده همه تمام شود. بنابراین چیز دینی داره و به همین دلیل ادیز زیادی مردم میرن خب کردگار کردگار خیلی چیزا هست اولش میگه خداوند آرامش و کارزار خب میتونست بگه خداوند زمین، خداوند آسمان خداوند گل سرخ همش درست بود دیگه چرا میگه آرامش و کارزار این معنیش که این نامه موضوعش راجب سلح بودن اینو اینه به شیگم برایت استهلا توجه کردیم خوب پرشدوی میگم آها آها من نخست آفرین که کرد در کردگار خداوند آرامش و کاردار خداوند کیوان و بهرام و محافظ کیوان ستاره نخست پهرام یعنی میریخ ستاره جنگ ماه هم یکی از ستاره‌های نخست که میگم وقتی خیلی نخست بوده میگم کامر در عربه یعنی ماه در برج عربی خیلی نخ اینه که از ستاره ها هم خطاره های نحسون سن می از مشتری یا خورشید یا زهره این چرفی خداوند کیوان و بهرام و ماه خداوند نیک و بد و فر و جا می چقدر دقیقه این کار این این مسئله خیال نکنین ده دقیقه اینو گفتن که هر کتاب رو با کنین اینجوریه ها ابدایی این سالها ها باید به خودتون فشار تا بفهمید اصلا کجاها رو نگوام کرده هزار سال این دیگه ای به فرمان اون از گردام سپه وضو باز گسترده هر جای مصر تو جوان تندرستی و بخت همیشه به با تاج افتاده همیشه تندرستی بخت زامونه اگر اگر بر دلت راوی من تیره گشت سخاب جوانی سرت خیره گشت میگه تا جوان رو تجربه ای روی جوانی این فکر کردی و سرت خیره شده اگر اینطوره شنیدی که دشمن به ایران چکه؟ کرد به یاد بیار که این کیه داری باشه حرف می تو چو پیروز شد روزه دار نبرد میدونی وقتی که در جنگ پیروز شد چه معامله کرد با ایرانیان کنون خیره آذرم دشمن مجود خیره گفتم من بیهوده و بیخودی حالا بیخودی فکر اینکه شرم از دشمن بکنی مهری به نسبت دشمن دستوشی اوچین ندشتو اوچین اینا هیچ که با ما ساخت نیستن کنون خیره آذرم دشمن مجود بر این بارگه بر مریض آبرو آبروی خود کنجا نریض منه بر جوانی در فری که به علت جوانی سر به فریب پرودنه یا روح داره گولت میزنه پیرمند گرگ بسیار دیده و از گول میزنه تو رو افراسی ها میگه اگر از چرخ گردان نهیب نمیخوای یعنی اگر نمیخوای که بعد ببینی بد از جنزگار به فریب دشمن فریب زن مشوق گروگان که داری به درگه فرست سپر رو همست توی خرگه فرست تو را اگر فریبت نباید نباشد چگه میگه عجب نیزهی تو رو فریب بده من از خودم خیاس میکنم که چند بار من گولیسو خوردم تو راگر اگر فریبت نباشد چگه مرا را از خود اندازه باید گرفت که من زان بنده گفتار اوی بسی باز گشتم تو تکار اوی میگه منو بارها گول زد از جنگش برگشتم بعد پدر من در که من زان فریبند گفتار اوی بسی بازگشتم زه فیکار و بسی اینکه برگشتم نرفتی ایچ با من سخون زاشتی زه فرمان من روی برگاه بعد میگه که حرف بسیار بعد تو با خوب رویان بیا میختی به شادی یا از جنگ بود شدی سر گرم شده با زیوارو خان و به عش اش و عشرت میشد تمایل کردی اینی که از جنگ چیز کردی. همون رستم از گنج آراسته نخواهد شدن سیر و از خواسته رستان که الحمدلله از مال و از گنج سیر نمیشه اونم دنبال کار خودش بود بزن مردری تاجه, تو راست تراستر شد از جنگ درستن مردری و مردری قبلا گفتن من ای ارس و میراسه میراس چیزی که از مرده و آدم مرسه مردری محففش میشه مردری میگه که تو فکر میکنی که تاج شاهنشاهی بهت به ارس میرسی میرسید دیگه ولیت کابوس میگه دیگه تو از این میراث تاج شاهنشاهی که بهت میرسه سرت از جنگ رستن خالی شده به فکر جنگ کردن نیستی اوزن مردری تاج شاهنشاهی تو را سر شد از جنگ رستن توحید در بی به شمشیر جوی میگه وسیله بی بودن تو شمشیرت نتاج یه شعر درجه یکی داره شاعری هست نام زهیر فاریابی شاعر خیلی فصیح خوبی میگه عروس ملک من به کسی رو تشکیم میکنم به عروس عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ؟ که بوسه بر دم شمشیر آبدار برد میگه کسی عروس مملکت میخواد در آموزش بگیره باید لبه دیزی شمشیر آبدار رو یعنی هیچوار باز کسی که داره بر بینیازی به شمشیر جوی به کشور باید شاه را آب روی تو سه سفه بد پیش تو بسازد تو باید کم و پیش تو توس رسید همه ای کارها رو که باید انجام میده و درست میکنه همان در زمان، این دستور شاهی. همان در زمان بار کن، بر اوگان که داری، به بند گران سوار عصدشون هم نکن با بند و زنجیر بهشون شون تو خر و بفرز از این آشتی راز چرخ بلند چنان ها به جانت گزن اینکه من اینطور فکر میکنم که راز و چرخ بلان است که از این صورت جانتو گذن بست میرسن میرسن به ایران رسد این بدی آگهی برا شود و این روز گابر بهی میکرسم اینطور بشه و وقتی سیاوش کشته میشه میدونم که رستم خواهی که دران رو زیر رو میکنم و افراسی ها به سر اینکار سرش باد به ایران رسد این بدی آگهید بعد براشو بدین تو می. تو شو کین و آویختن را بساز آویختن رنید درگیر شدنه تو شو کین و آویختن را بساز خوزین در سخن ها و, و گرزان دراز میگه اینجور حرفایی زدید ای خودی دیگه نزن برو دنبال جنگ چود تو ساز جنگ و شبیه خون کنی ز خاک سیاه رود جیهون کنی یعنی چی؟ ز خاک سیاه رود جیهون کنید یاد شوید بشید یعنی از خاک سیاه رود جیهون بسازید یعنی چی؟ یعنی اینقدر اونجزی بکنید؟ تو چ تو تو صاحب تو جنگو شب یخونی ز خاطرس یه روز جهید می‌کنی سه پهفت سرندر نیارته خواب افاضیاون دیگه خوابش نمیبره بیاید به جنگ تو احراسیان شبیخون گفتیم حمله شبانی داشت کارا خوابه باگرمهر داری بران اهرمند اگه, اگه بر اون ابلیس محبت داری نخواهی که خانت پیمان شکن نمیخوای که اون آدم که خودش رئیس کل پیمان شکن از هزار بار پیمان شکسته اگه تو به اون محس و نمیخواهی که اون تو رو او پیمان شکن بدونه سپه توس راده تو خود باز کرد پشکر بود از بیا من خودش این پاره میکنیم دیگه دیگه به تو مرد افتی نیست نه این مرد پرخواه و جنگ و نباید برمیشه که مرد جنگ نیست نیست همان خود کامل سرک باشه سیاوهش در طرح چون اگه واقعا افراسی رو آف خواهل نمیدی میومدی کاملا درسته کاملا درسته راسته هم اگه بود نمیشه سر سیاوهش بره بشید یعنی اون مسئله درسته اما الان اون افراسی ها در موضوع و خیلی فرض داره جنگ کردن در خاک خود تا جنگ کردن در خاک دشمن در خاک خود وقتی دشگری جنگ کنه همه مردم طرفدار اون دشگر هستن غذا بهشون می کمک بهشون می پنهانشون می در خاک دشمن درست و عکسه یعنی هر آدمی که از اونجا دشمنی و این بارها اتفاق دیدید که ایرانی‌ها وقتی عراقی‌ها اومد بودن چه زور زدن بهمون کردن ولی شهر فکر کرد که توی خاک دشمنم من کاری میتونم بکنم یعنی میرم فوری میتونم برم اونجا رو درست ناتون ببین حالا ایران و عراق اینا که به یه دشمن قوی پنجه مثل آلمان تو خاک روسیه پدرش دیدیم در اومد دیدین در شان که تو یعنی تا الان کاملا ثابت شده در که در حاک دشمن جنگ کردن اعتمال پیزوزیش تقریبا صفره برای اینکه بعضی که گرفتن تا دائم دائم اون مردم در سر طولی برای برای کسند خواهی هست همه مردم که نمیشه کشکه با حوشن که چیدینه اون زمینه اینست که اینجا خود کاغوس هم گفته بود بعد اونم که لای زیره کشیده بود بعد اگر, اگر برن در خاک حریف دشمنم برای اینکه باید به پای جون دیگه بزنید که میدونه که زن و بچه و پیر و جوون و اینا دیگه مطرح نیست میان همه رو همه رو داغون میکنن. اینه که اونا بازیسان. ای ها اتفاق میفته که در این که چون پای جونشون میخوان بزنن طرفو چه دست. یعنی که رفتن اون طرف. دیگه واینها اگه تو چیز نمیکنی سب، ها بده تو اگه نمیخوای که پیمان شکن پیشت نظره نهادم بر محتشا حیومی پر براورد و ببرید تو نامه به نزد سیاوش رفید بران گونه ناخوز گفتار فرستاده را خاند و پرسید و جست از اون ترد ایک سر سخونها درست گفتن که با پیشتن لفته بود به تو سرد خابوز بود سیاوش بشنید گفتار اون درستم قمی گشت از کار او ز کار پدر دل پر کرد به توخان و از روزگار نبرد همی گفت ست مرد گرد و سواز در خیشان شاهی چون این همین نیک ها همه همین بیگناه اگرشان پرستن به نزدیک شاه نپرسد نپرستد نه, نه, نه اندیشه نه همون کنند زنده بردارشان به نزدیک یزدان چه پوزش کنم بد آمد سفار جهان بر تنم. ولیدون که جنگ آورم هی گناه عبر خیر با شاه سیران سفاه جهاندار از این بز من گشاید بر من زبانم جمن اگر بازگردم به درگاه شاه به توس سفه بز سفارم سفاه از اونید هم برسنم پد رسد چپا راست بزینم و پیش بز نیابم به صدا به خود جزبری ندانم چه خواهد بسیدی دلیل دو تن را لشکر زلش کرده تو همجه بستانی تو وقت نمی که یه جایی گیر کرده سیاورش که پس و پیش دست چپ و دست راست و بالا و پایین هر جا را کنه بلی اینو توجیح داری میکنه فیضاید ناماره مور کردن حیون پر برابر یعنی به سرعت بس. چون نامه بن عزتی آغوش رسید برام اون گفتار ناخوشتی ناخوب گفتاری فرستاده رو خواند تو نامه که دقیقا مشکل که گفت ولی اوضاع احوالو چه خب چه تو اتفاقات چی شد که نگفت که, که رستم چی گفت که چی شنید من بعد چی تو شد اینارو که نگفته اینه که فرستاده رو صدا کرد و اوضاع احوالو پرسید فرستاده رو خواند پرسید و جز ازو کرد یک سر تخونه ها درست یعنی از او تمام اطلاعات لازم رو به دست که با پیل تن رفته بود فرستاده گفت که کابوس چه رفتاری با دستم داشت زتوس از زکابوس کاشفت بگو سیاوش جو بشنید کفتار او زرستم قمی گشتو از کابوس باید سیاوش به علت جوونی، درست نمیفهمه که می آمدن رستم چه صد می بهش میزنن فقط متاسف میشه که چرا رستم رو بهش توهین کردن ولی این که فکر کنه که چه بلایی سر خود من اومد که این مرد نمی من توجه نداره سیاوش جو بشین گفتاره اوز رستم غمگشت از کار اوز کار پدر دل پراندیشه کرد به و زه ترکان و از روزگار رو نبرد. دوشن. پیش خودش اینطور گفت حالا ببینیم یکی یکی میگفت. هم می صد مرد گرد و سفار زه خیشان شاهی چنین نامدار. همه نیتخواه و همه بیگناه گناه. آدمایی که پیش شسن نه سر پیازن، نه پیازن دخالتی نداشتن، گناهی نداشتن آدمای خوبی هستن همه میخواه و همه بیگناه اگرشان فرستن به نزدیک شاه نه پرسد نه اندیشت از کارشان همون گهبان زنده بردارد من دار زدن که قبلا بهتون گفتم دار زدن هلقا بیست کردن به این صورت نبوده یک چیزی بوده مثل سلیب ایسا یا نه یه توب عادی که میبستن حریف و بهش، طرف کسی که دار می زد به اون یا بدترین نوع مجازات این که هم بذارن می برای که در و زیر اون بند خون بند میاد و سخون سیاه میشه دردای درد این از پشتگی و درد بدبختی در مدت طولانی می میده این بدترین می بهترینش اینه که تیربارونش کنن که همون لحظه بمیشون و متوسطش اینه که مثلا با سنگ و اینا بزن حال همه این کار ممکن میکردم همه این ان گاهی هم بلشکر نجاتنده سر اینا قبل از اینکه به بدختی گرفتفتن از دار میاردنشون پایین به حال که آدمش حالا الغایز میکنن برد یعنی دیگه نمیشه پایین آورد تا پایین گران مورد و بهترین نوع این راحتترین نوع که دوس دیق می تو نمیشه ق گاهی همون لحظه ولی استسخون گردنش میکنه نخش قطع میشه و هموم نه فرصت، نه همیشه از کارشان، همون گفتانه زنده بردارش به اگه این کارگر چاه به نزدیکی که یزدان، چه خوزش کنه؟ من اینو رو خواستم اورغنی چایم بعد آمده کار جهان بردم دیگه اینکه اگه برسیم برای که جنگ رو آورم بی طرف آمده، جز اوزخواهی و جز نرمی و جز چیز ندارم، من بدون هیچ باهانه ای بدون هیچ گناه که از اون باشه. جنگ آورم بیگونا ابرخیره ابرخیره یعنی برخیره برخیره یعنی یمزه با شاه توران سپاه اگه جنگ بکنم جهاندار نفس دادیم این بد ز من خدا رو چی بدم برای اینکه جنگ کردن شوخی بردار نیست به محض اینکه این کار بکنم هزاران نفر از دو طرف کشته میشه چه از این و چه از اون و جواب اینا رو کی بده جهاندار نفس هم دادیم بعد زمن زبان انجمند و اگر بازگردم به درگاه شاه به توسه سفه و سفارم سفاه از اونیز هم برتنم تنم برسیم شاه هم حد اقل نکمیده حبس هم کنم میکرد از اونیز هم برتنم تنم برسیم شب و راه بعد بینم و پیش برسیم نیاب هم زی صود خود جد میگه از صود چیزی جد بدی نمیدن با اینکه که رو آبه را توی بوده بکشنش و چون سیاوش میدونست که کیک کابوس این زن دوست داره اومده و شفاعت گرده افته نه اینه به هم ببخشید ولی اون زن که این چیز نمیدیده او عشق شکسته خوده و شده شدهش میدیده و نفاصی که چیز خرافی غروفی نه یا آقا همزه ندانم چه خواهد رسید نمیتونم که از جان رو خدا چه میرسه چه میاد به سر من چه میشه اینا فکتر هاییست که سیاهوش با خودش میکنه بعد دوتا از تفایانشون میخواد و باشون حرف میزنید توت امراض لشگرد گنداوران که بهرام چون تون زنگی شاوران که رازش به هم بود با حد از آن فس رستم خود از انجامن یه بدان رازشان خوان. بدان رازشان خوان به پرداخت ایوان و بین شانس که رازش به هم بود با حد از آن فس رستم خود از انجامن. پدیشان چنین گفت که از بخت بعد فراوان همی بطن هم رسد. به مهربانی دل شهریار به سان درختی پر از و باز که سود آوه او را فریبند گشت تو گفتی که زهر زهر گزایند شبستان او گشت زندان من خمی شد دل و وقت خندان من چون این رفت بر سر مرا روزگاز که با مهر او آتش آورد بود. باز بر آن سود بی آب جنگ مگر دور مانم به چند نهنگ به برخندرون بود چندان سفاق سفاق چو ترسیبت از نشسته به در اون شهریات پر از کینه با سن هزار برفتیم بر سان زمان دمان نجستیم در جنگ ایشان زمان که کشور در آسر بپرداختن گروبان آن هدیه ها ساختن همین رو آن نمودند را که ما کردیم از این با. برای از بحر خودون برای از بحر جنگ چو گنجو آمد و کشور آمد به جنگ باید همین خیر خون ایختن، چه نمیداند کی اندر او بیفتند کش نباشد به مقصودگی نزد بدلی بوس دانت هست عباد آمد و رفت دیدم پشت پول هم دست باید او شما فتندش نیاید همین کار من بکوشد برن جو آزار من به خیلہ همین جنگ فرمایدم بترسم که زنگ خود همین همین سرز یزدان نباید کشی سرابان نکوهش نباید دوگیتی همین بود خواهد به من بمانت به کامل دل اهل من وزن پس که داند که دین کاردار کرا برکشت وزن پس که داند که دین کاردار کرا برکشت گردش روزگار نداری مرا پاژکی پاژکی پاژکی شین و جب هم بدل میشه ندادی مراکات که مادرم وگر زاد مرگ آمدی بر سرم که چندین بلاها به باید کشید بگیدی همه زخم باید کشید درختی این برکشیده بلند که بارش همه زخ برگش گذن بر این گونه پیمان که من کردم به یزدان و سوگنها خودم. خودم خودم اگر سر بگردانم از راستی پراز آید از ارسوی کاستی پراگنده شد در جهان این سخن که با شاه که این بند زبان برگشایند کس به بعد به هر جا من کنان کن سزد فکین بازگشتن گریدن زدین کشیدن سر از آسمان و زمین چون این کی که من از کرده کجا بردهد گردش روز شوم روم کشوری جوی من در جهان که نامم به خاوز گردد نهان روشن زمانه روشن زمانه بود که فرمان دادار گیمان اینا حرفای چیزه بعدم بعد این اینا مشورت میکنه با این دوتا بعد میگه که شما چپار کنم. که من قبلا گفتم باید خیلی آسونه یه توضیح زیادی نده حرست کنم که میگه که بعد از اینکه رستم رفته بود دوتا از پهلوانان همراض او و مشاوره بودن اونا رو ستاکه دوتن رازفش کرده در گنده آوران چون بهرام و بهرام پسر به برادر گی زنگم یکی دیگه بود زنگه شاوران یعنی زنگه پسر شاپور شاپور شاپور زنگه شاوران الفانونو بو نقوط آخر دوتن رازفش کرده گنداوران که چون بهرام و چون زنگه شابران بدان رازشان خواند نزدیک خیش این صداشونی کرد که reproduce مشورت کنون به پرداخت ایوان و به اینچان ایوان خالی که که رازش به هم بود با هر دو تن از آن پس که رستم شد از انجمن از وقت که روستم رفته بود سیاوش با این دو نفر عشق برد به دیشان چنین گفت که از بخت بعد پرابان همی برتن هم بردیست بدان مهروانی دل شهریار به سانده رفتی پر از برگ و بار چو سوداوه او را پریبند گشت و گفتی که زهر گزایم دیگر دیگه دل پر مهر پاچهار را وقتی سوداوه او را پریبت تبدیل زهر شد شبستان اون گشت زندان من فهمی شد دل و بخت خندام. چون این رفت سر روزگار که با مهر او آتش آور با. بوزگار اینطور برای من بود که عشق سودابه برای من آتش بیاره گزیده برای من سوز بی آب جنگ گمان من بر اون سوزش بی فایده و عشق بی رب جنگ رو اختیار کردم برای اینکه دور باشم مگر دور مانم زی چنگ نهنگ نهنگ سودابه به اون وقت وقت میدان جنگ و اینا رو شرمده به بلخندرون بود چندان سپاه سپاه فتر رو کرسیبه کینه خوا. نشسته به سوقدندرون چهریار افراسی ها پر از کینه با تیرزن ست هزار اینا بودن؟ برفتیم برسان باد دمان نجستیم در جنگ ایشان زمان میگه ما رفتیم مثل باد رفتیم فرصت هم از دست ندادیم در جنگ باشون جنگ کردیم چو کشور سراسر به پرداختن بارها گفتم که پرداختن خالی کردن و تخلیه کردنه چو کشور سراسر به پرداختن گروگان و آن حدیه ها ساختن همه موبدان آن نمودن راه که ما بازگردیم از این دست با یکی که نه کار کردن تمام مشاورای من موبدانی که بودن این طور سلام دیدن که ما از این جنگ برگردیم براگرز بحر فوزونی است جنگ چون گنج آمد و کشور آمد به چنگ چه باید همین خیره خون چون این دل در آبی میگه اگه برای فوزونی جنگ فزونی فوزونی میخواد وقتی گنج آمد فهملکت هم آمد حاکمونم پس گرفتیم جنگ برای چی میخواد چه باید همین خیره خیره یعنی بیهوده خون چون این دل در آبی سری کش نباش نه از بدتری باز بگید اینکه ولی کلهی که مخصوصی نیست به اشاره به که کافوزه که مخصوصی نیست بدی و از هم تشکیق میمیده خوباد آمد و رفت و گیتیست سپورت قواد نصب که یه خوبادی؟ هم رفته باید شمار که خودمون هم خواهد رفت ولی خب پدر ما درست داره میره حسن نیا آگر همین کاغر من بکوچت درن تو به آزا من به خیلی همین جنگ فرمایدم این خودی دستور میده که من جنگ بکنم به که سوگم بگذاردم من قسم پردم قسم چه من میشه عذیتم هم میکنه همین سرز یزدان نباید کشی فراوان نکوهش نباید چنی از یزدان نبایدم سرز پیچه دو گیتی همین برد خواهد من بماند به کام دل همینگی که این کاری که چهی میگه دو دنیا را از دست من میگه که بادرم جنگ کنم نه در آخراتم پیمان شکن هستم و دروقو هستم و بعد اه بنابراین دو گیتی همین برد خواهد من بماند به کام دل اهر من تنها کسی که خوشحال میشه از این وقت احریمنه پس که دانت که از این کار زار که را برکشت گردش روزگار تازه از این حرفا گذشته جنگ که آخواتش معلوم نیستش که تا اینجا ما پیروز شدیم ولی کس چه میدونه که بعد اگر جنگ دوباره شروع کردیم چی پیروز بیرون میاد که برکشد یعنی بالا میشه گردش روزگار نزادی مرا تاشتیم اگر زاد مرگ آمدید مکاشت مادر مره نمی یا وقتی زایی زودتر که چندین بلاها نباید کشید زگیتی همه زهر باید کشید این این جوون زیوای پاکیزه چه به سرش می آن درختیست این به این رفتار افتار که را میگه این این برکشیده بلند که بارش همه زهر رو برگش کردن بر این گونه پیمان که من کرده ام به یزدان و صوبگندها فرده اگر سر بگردانم از راستی فراز از تصویر کاستی من اگر از راستی سر بگردونم همه بد میگن کاستی پیدا میشه این مطلب در همه دنیا پراکنده شده پراکنده شد در جهان این سخن که با شاه توزان فکندیم کن. این عهد که ما با اون کردیم در همه دنیا پراکنده شده زبان برگوشوند هرکس به بعد بر هر جای بر من چنان سه زر اگر من این عهد بشکنم همه جا به من بد میگن و دروستم هست رضاواره به کین بازگشتن بریدن زدین زد کشیدن سر از آسمان و زمین چون این پسند پسندت من کردگاه کجا برده هد گذشیدگاه روشنه بعد به زنگه و بحرام میگه که من میرم یه جایی باید که شب هم توی در جهان که نامم زی کابوس گرد در جهان که نشون منو پیده نستن نمیجه روشن زمانه برانسان بول که فرمان دادار گیهان برده روشنه همون روشی این شین مستری که میاد مثل ورزش و دانش و خورش و اینا گاهی همراه تست مثل خورشت خورشت همون خورش و در بعضی لحشه ها اصلا کلمات ها تو بیشترش که من دیدم در عراق یا نیز که ای هست لحاف رو میکنم لحاف خورشت برشت روشت این صوت یکی مردم اینه میگن یعنی چه گفت که غلطه یکی هم با نون میاد مثل روش اینه فرش اینه همون روش روشن زمانه به دانسان که فرمان دادارو که متاسفانه روش روزگار به اون طولتی که خداوند دست میده همینکردش چیز که بعد به زنگ اوینا میگه که شما چکار بخونیم رو تو, تو اینا هم بر زنگه شاوران آه. بیار آگل را برنج رنجه گیران رو بگه بمونه امروز هم با اینکه حرفای دیگه غیر از دست خیلی زدیم اما مدفعاً توب کنیم برای نمیستیم فهم کنیم خودتون باید بخونیم توب کنید بخوندن یا حالا رافتو دیگه که مزاری بفهم منتظر این که من همارا بگم نباشیم که من حتما نمکنم همارا بگم